سوم زندگی ایوان ادیش به این روال تا هفت سال بعد از ازدواج ادامه یافت. ایوان ادیش دادستان ارشد شده بود. چنان که دیگر هر سمتی را نمی پذیرفت و در انتظار مقامهای دلخوا بود. اما نه پیش آمد نگواری آرامش زندگیش را پاک برهم زد. منتظر بود که در یک شهر دانشگاهی به سمت ریاست دادگاه منتسب شود. اما گپ زرنگی کرد و پیش افتاد و این سمت را از دست او ربود. بود. به خشم آمد و او را به باد ملامت گرفت و به او داخت و با رئیس مستقیم نیز تندی کرد. میانش با تصمیم گیرندگان به هم خورد. چنان که بار دیگر نیست که سمت دلخواهی خالی شد او را فراموش کردند. این ماجرا در سال 1880 روی داد. سالی که در زندگی ایوان ایلیچ سال سیاهی بود. از یک طرف می دید که حقوقش کفاف زندگی اشرا نمی و از سوی دیگر پیدا بود که دوستان همه فراموشش کردند و آنچه او بزرگترین و بیرحمانترین بیانصافی نسبت به خود می در نظر آنها بسیار طبیعی می نماید. حتی پدرش خود را ملزم به یاری او نمی شمارد. ایوان ایلیچ حساس می کرد که همه روی از او گردندند. و وضع او را با 3500 روب مواجه بسیار عادی می شمارند و حتی کامکارش می دانند تنها او بود که می دانست که با این ظلم هایی که بر او رفته است و با نقنق مدام زنش که سوان جانش بود و با هایی که با خرج های بیش از دخلشان بر هم باشه می شد و ازش هیچ عادی نیست تابستان آن سال به منظور سبک ساختن بار معیشت مرخصی گرفت و با زن خود به روز دارفت تا تابستان را نزد برادر پراسکوویا فیودورونا بگذرانند اما در روستا دور از کار غذا اولبار نه تنها احساس ملال کرد بلکه افسردگی را تاب روبا یافت و به روشنی دید که زندگی به این روال برایش ممکن نیست و ناگزیر باید چارهای اساسی بیاندیشد. شبی خواب به چشمش نیامد و تا صبح روی محتابی قدم زد و از بران شد که به پترزبورگ برود و ایمآن را ببیند و حق کسانی را که قدرش را نشناختند در دستشان بگذرد و به وزارتخانه دیگری منتقل شود روز بعد بیاعتنا به اصرار زن و برادر زنش که می کوشیدند از خر شیطان پایینش آورند راهی پترزبورگ شد در این سفر قستی جز این نداشت که کاری برای خود دست و پا کند که پنج هزار روب حقوقش باشد دیگر کاری نداشت به اینکه این سمت در کدام وزارت وزارتخانه باشد و چه نوع و در چه فقط شغلی میخواست شغلی که پنج هزار روبل مواجب نصیبش کند خواه در دستگاه دولت باشد یا در بانک یا را آهن یا بنیاد خیریه شهبان و ماریا یا حتی در همین همینقدر که پنج هزار روبل مواجبش باشد و در وزارتخانه که قدر او را نشناخته بودند نباشد مقصودش حاصل میبود از غذا این سفر به موفقیتی العاده انجامید که ایوان هیچ انتظارش را نداشت در کورسک اف اس ایلین که با او سابقه آشنایی داشت به همان واگن درجه یکی که او در آن بود سوار شد و ضمن گفتگو به او اطلاع داد که تلگرامی به دفتر استاندار رسیده است که بنابر آن همان روزها تغییرات مهم و نامنتظری در وزارتخانه صورت خواهد گرفت و خلاصه اینکه ایوان به بهجای پیوتر ایوانوویچ گمارده خواهد شد این تغییرات فرضی گذشته از نتیجهشان برای کشور برای ایوان ایلیچ نیز اهمیت بسیار می داشت زیرا باعث سرکار آمدن پیوتر پتروویچ البته دوست او زاخار ایوانوویچ میشد و این برای کار ایوان ایلیچ بسیار اهمیت داشت زیرا زاخار ایوانوویچ دوست صمیمی او بود وقتی ایوان ایلیچ به موسکو رسید این خبر تایید شد و در پترزبورگ به دیدن زاخار ایوانوویچ رفت و از او قول گرفت که سمت دلخواهش در همان وزارت دادگستری به او داده شود. یک هفته بعد تلگرامی برای زنش فرستاد که با اولین گزارش زخار به جای میلر منتصب. سمت من حتمی. از برکت این تغییر مدیران، ایوان ایریچ در همان وزارت خانه پیشین در سمتی دو پایه بالاتر از همقطران خود قرار گرفت و علاوه بر پنج هزار روبلی که میخواست، سه هزار و پانصد روبل هم هزینه سفر دریافت کرد. به این ترتیب، بیزی که نسبت به دشمنان گذشته و به تمام وزارتخانه داشت، پاک فراموش شد. ایوارلیچ احساس کرد که مردی خوشبخت است. به روستا بازگشت. و به قدری شادمان بر زندگی راضی بود که از مدت‌ها پیش نبوده بود. راستکوویا فیودوروفنا نیز شادمان شد و صلح میانشان برقرار گشت. ایوان ایلیچ تعریف میکرد که در پترزبورگ همه چه سمیمانه ارتقای او را جشن گرفته بودند و دشمنانش همه سرفکنده شدهاند و تملقش را میگویند و حسرت میخورند و به ویژه میگفت که چقدر همه در پترزبورگ دوستش دارند. پراسکوویا بیا فیدروفنا به حرفای او گوش میداد و وانمود میکرد که همه را باور می‌کنند و هیچ مخالفتی با او نکرد. فقط ترهایی برای زندگی تازه در شهری که باید به با آن برود میریخت و ایوانیلیچ با خوشحالی میدید که این ترها با ترهای خودش هماهنگی دارند و زنش با او اختلافی ندارد و زندگی زناشویشان که پایش میلنگید دوباره شیرینی و شایستگی را که باید کیفیت خاص و حقیقی آن باشد اختیار می کند ایوانیلیچ برای مدت کتایی به روستا بازیشته بود میبایست دهم سپتامبر کار خود را در سمت جدید شروع کند و از این گذشته میبایست در محل تازه مستقر شد و بساط زندگی را به آنجا منتقل کند و بسیاری چیزها بخرد و سفارش داد و خلاصه همه کار را همان طوری ترتیب داد که در ذهنش شکل گرفته بود و ترهش تقریبا درست همان بود که پراسکوویا یا در نظر داشت و برای این کارها همه وقت لازم بود. اکنون که کار کاملان به کام بود و همه چیز به این خوبی سامان یافته بود و او و زنش هدفهای مشابهی داشتند و از این گذشته بسیار کم در کنار هم بودند به قدری با هم هماهنگ شده بودند که هرگز در طول زندگی مشترکشان نبوده بودند. پیوانلیچ فکر کرده بود که خانوادهاش را با خود ببرد اما برادرزنش و همسر او که نایهان به او و خانواده سخت علاقمند شده بودند و خود را به آنها یگانه می‌یافتند. به قدری اصرار کردن که عاقبت ترها رفت. ایوان ایلیچ رفت و انبساطی که حاصل موفقیتش در کار و همدلی زنش با او بود و این دو موجب یکی دیگری را تقویت می کرد. از دلش زایل نمی شد. آپارتمانی دلپسند پیدا شد که درست همان بود که او و زنش رویایش را می پرداختن. تالارهای پذیرایی فراخ و بلند سقف به سبک قدیم اتاق کاری مجلل و راحت برای خودش و اتاقهای دلخواه برای زنش و دخترش و اتاق مطالعهای برای پسرش خلاصه مثل این بود که طرح این خانه را به میل آنها ریختند ایوان ایلیچ آراستن خانه را خود به عهده گرفت کاغذهای دیوارها را خود انتخاب کرد مبلهایی تازه به آنچه داشت افزود و اصرار داشت که قدیمی باشند و با تجدید روكوبی آنها کیفیتی خاص و برازنده به آنها بخشید و به این شکل خانهش به تدریج کامل میشد و ساحتش به آرمان شخوهی که در خیال برای خود پرداخته بود نزدیک میگشت. هنگامی که آراستان خانه به نیمه رسیده بود دید که نتیجه حاصل از آنچه انتظار داشت بهتر شده است. صورت دلپذیر و برازنده و خالی از ابتظاری را که خانه پس از پایان کار اختیار می کرد در نظر می آبر. وقتی به خواب می رفت سال کوچک را کامل شده در نظر مجسم می کرد. چون تالار پذیرایی را که هنوز ناتوان بود تماشا میکرد و آن را در حالتی که مبلها همه در آن قرار گرفته باشند در خیال میآورد و بخاری دیواری را با حفاظ شرارگیر جلوی آن میدید و سربخاری را و صندلی کوچک و بزرگ در سلاسر تالار پراکنده را و ظروف زیبای درون نبوفه و بشغاب های عتیقه روی دیوارها، و وسایل ورشوی همه در جای خود قرار گرفته بر پرده خیال منعکس میافد. حیرت همسرش و دخترش را که در این جور چیزها با او همسلیقه بودند از دیدن خانه آراسته در نظر می آورد و خوشحال میشد. آنها هیچ انتظار چون این خانه ای را نداشتند. او به ویژه موفق شده بود چیزهای عتیقه زیبایی که به تالارش این کیفیت نجابت و اصالت را میبخشید پیدا کند و به قیمت ارزان بخرد در خود به عمد همه چیز را به خود مشغول می داشت که کار جدید که به آن علاقمند نیز بود کمتر از آنچه انتظار داشت مجزوبش میکرد. در جلسه ها گاهی چند دقیقه از بحث جاری غافل می ماند و مثلا به کیفیت والان پرده ها فکر می کرد که راست باشد یا دال بردار. و به خطی در بنده این مسائل بود که حقلب خود جای مبلها را عوض می کرد یا کیفیت آویختن پرداها را تغییر میداد اکمان از نردبان بالا رفت تا به کارگری که منظور او را نمیفهمید نشان از که میخواهد پوشش دیوارها چگونه باشد و پایش لغزید و از نردبان فرو افتاد. اما چون قویه کل و چالاک بود خود را نگه داشت و فقط پهلویش به دستگیری پنجره خورد. ضربه در بود اما به زودی خوب شد. ایوان ایریش در تمام این مدت بسیار شادمان بود و احساس تندرستی میکرد. نبشت احساس میکنم کنم که پانزده سالی جوانتر شدم حساب کرده بود که در ماه سپتامبر کار خانه را تمام کند اما کارش به درازا کشید و تا عواست اکتبر او را مشغول داشت ولی نتیجه عالی بود و این فقط عقیده خودش نبود بلکه هر که خانه را میدید دید همین را میگفت. اما در حقیقت کارش به کسانی می که سروتمند نیستند و می از سروتمندان تقلید کنند و به این سبب نتیجه کارشان. نه به سرمتمندان برکه به یک دیگر شبیه می شود پرچه های اتاغارا، سیاه چوب که تقلیدی از آبنوس بود گلها، فرشها، زینت‌های ورشوی برنگ های یا درخشان خلاصه همه چیزهایی که همه افراد طبقه خاصی فراهم می‌آورند و کارهایی که می تا به طبقه خاصی شبیه باشند خانه ایوان بهقدری به قدری به همه خانه های دیگر شبیه بود که حتی توجهی جلب نمی کرد ولی او خود خانه اش را خاص و یگانه می وقتی به ایسگاه راهن به پیشباز زن و فرزندان خود رفت و آنها را به خانه نورانی و از هر جهت آماده آورد و پیشخدمتی کروات سفید زده در را روی آنها گشود و آنها به سرسرایی به گلا وارد شدند و بعد به تالار پذیرایی رفتند و دفتر ایوان ایریچ را دیدن و چشمهاشان از شادی روشن و وای وای تحسینشان مکرر شد او خود را مردی براستی خوشبختید پرها را به همه جا می برد و همه چیز را نشانشم میداد. و از تحسینشان سرمست میشد و از لذت می درخشید همان شب وقتی پراسکوب یا فیادروفنا سر چای ضمن صحبت از او پرسید که چطور شد که افتاد خندید و نشان داد که چطور از بالای نردمان افتاده. و کارگر دیوارارا را به وحشت انداخته بود لیچ گفت جای شکرش باقی است که من ورزشکارم هر کس دیگری بود مرده بود اما من این جایم کمی زخمی دید. پس که میگذاری درد میکنه اما چیزی نیست خوب میشود فقط یک لکه یک کبود باقی مانده زندگی را در خانه جدید شروع کردند و وقتی خوب مستقر شدند و به جای جدید خو گرفتند چنان که معمولاً چنین است دیدن که فقط یک اتاق کم دارند و نیز درآمدشان در چه فوق‌العاده زیاد شده بود اگر اندکی فقط 500 روبل بیشتر می‌بود دیگر نقصی در زندگیشان نمی نمی‌ماند. در آغاز کار که هنوز خوب مستقر نشده بودند و چیزهایی مانده بود که بخرند یا سفارش دهند و این یا آن مبل را جا به جا یا فلان و بهمان را با هم جور کنند احساس بسیار خوشایندی داشتند. در چه اختلاف نظرهایی میان زن و شوهر بود؟ ولی هر دو به قدری خوشنود بودند و کارهای کردنی به قدری زیاد بود که بی جدال زیاد با هم کنار می آمدند. وقتی دیگر کاری باقی نماند که کرده شود، زندگی اندکی رنگ ملال گرفت و احساس کم بود آشکار شد. اما رفت رفته آشنایی هایی پیدا میشد و عادت هایی پدید می و زندگیشان هر طور بود پر میشد. ایوانلیچ ایوان الیچ صبح را در دادگاه میگذرانید و برای نهار به خانه می آمد. ابتدا از این ربال رضایت داشت و شادکان بود. هرچند که زندگی از اندکی دلازاری خالی نبود که تازه آن هم سرچشمش همین خانه بود. کوچکترین لکه روی سفره یا پارچه دیوار پوش یا بریدن ریسمان پرده و از این نوع سخت به خشوش می‌آورد. به قدری برای آراستن خانه رنج برده بود که اندکی زای شدن صورت ظاهر آن برایش سخت دردناک بود. اما به طور کلی زندگیش طوری میگذشت که به عقیده او بایسته بود یعنی با آسودگی و لذت و با آبرومندی ساعت نه از خواب بر برمیخواست قهوهاش را می نوشید و روزنامهاش را میخواند بعد اونیفرم قضاوت می کرد و به دادگاه میرفت و آنجا توق اسب اساری آماده بود و فوراً بر گردنش میافتاد پذیرفتن مراجعان تحقیقات لازم از دبیرخانه نظارت بر امور خود دبیرخانه اداره جلسات دادگاه، اداره کمیسیون‌های اداری و از این گونه در همه این کارها همیشه میکوشید هوشیار باشد و انصر شاداب و جاندار انسانی را که همیشه مانع درستی جریان امور می شود از اصل قضیه جدا کند و کنار بگذارد. میبایست که هیچ گونه رابطه انسانی و غیر اداری را با مردم روا ندارد. هر گونه رابطه و اشخاص میبایست برای کارهای اداری و بر اساس مقررات اداری باشد. مثلا شخصی مراجعه میکرد و سالی داشت. ایوانی اگر سوال او را جزه حوزه مسئولیت خود نمیافت به او جوابی نمیداد. اما اگر کار آن شخص به دایره صلاحیت او مربوط بود و چنان که روی کاغذ مارکدار بیان شدنی باشد آن وقت در حدود این رابطه هر کمکی و حقیقتا هر کمکی که می توانست به او میکرد و ضمن این کمک صورت ظاهر مناسبات انسانی و دوستانه یعنی عدب را رعایت میکرد و چون رابطه اداری تمام شد هیچ گونه رابطه دیگری جایز نمی بود. این توانایی جدا کردن جنبه اداری و مخلوط کردن آن با زندگی واقعی هنری بود که ایوان ایلیچ به بالاترین درجه داشت و با تمرین و طولانی و ذوق شخصی آن را به چنان زرافتی رسانده بود که گاهی همچون هنرمندی چی دست به خود اجازه می داد که از راه شوخی جنبه های اداری و شخصی را با هم بیا او به این دلیل چولین اجازه ای به خود میداد که اطمینان داشت که میتواند هر جا که لازم باشد جنبه اداری کار را فورا مشخص کند و فقط به آن بپردازد و جنبه انسانی را کنار بگذارد. ایواریلیج این کار را نه فقط به آسانی و با لذت و شایستگی بلکه هنرمندانه میکرد. در خلال کار سیگار نکشید چای می یا اندکی در خصوص سیاست و اندکی در برای مسائل کلی یا بازی و بیش از همه از انتصابات حرف میزد. زد. چون کار به پایان می رسید، خسته، اما با رضایت نوازندی توانای ارکستری، ویالون اول که بخش مربوط به خود را به درستی و دقت نواخته است، به خانه باز می گشت. به خانه که می رسید زنش و دخترش آزم مهمانی بودند یا مهمان داشتن و پسرش به مدرسه رفته بود. یا با معلم سرخانهش به تکالیف مدرسهش مشهور بود و آنچرا که در دبیرستان میاموزن با جدیت میاموخت کارها همه به روال درست جریان داشت بعد از نهار اگر مهمانی نداشتند، گاهی کتابی را که بحثش زیاد بر زبانها بود میخواند و شب به پرونده آرسی دیگی میکرد یعنی آنها را میخواند و به کتب قانون مراجعه میکرد این کار برایش نه آور بود نه نشاتنگیز. کار فقط زمانی ملالانگیز بود که جایی در خانه دوستی بسات بازی فراهم باشد و او نتواند در آن شرکت کند اما وقتی چنین نبود کار هر چه بود بهتر از تنها نشستن یا بگو مگو با همسرش بود لذت بخشترین چیزها برای ایوان الیش مهمانی های کوچکی بود که ترتیب میداد و بانو بانو و آقایانی بلند پایه را دعواش میکرد و این گونه مصاحبت با آنها به وقت گذرانی خود این اشخاص شباهت تمام داشت همانطوری که تالار پذیرایی او نیز روز به تالارهای پذیرایی آنها میمانست یک بار حتی شب نشینی مفصلی ترتیب دادند و بساط رقص گستردند و ایوان ایلیچ بسیار سرخوش بود و همه چیز به خوبی گذشت فقط مسئله شیرینی به جدال تلخی با زنش منجر شد پراسکوبیا فیودورونا خود برای تدارک شیرینی فکری کرده بود اما ایوان ایلیچ اصرار داشت که شیرینی را از شیرینی ساز معروف و گران قیمتی بخرد و خود شیرینی تر فراوانی سفارش داد و دعوا بر سر این بود که مقدار زیادی کیک ناخورده باقی مانده و حساب شیرینی ساز سر به چهل و روبل زده بود این جدال بسیار شدید شد و به جای بدی کشید به طوری که پراسکوب یا فیدروفنا شوهرش را احمق بیشعور خواند ایوان ایلیچ سر خود را در دو دست گرفت و از خشم دیوانه حتی صحبت از جدایی کرد اما شبنشنی با سرخوشی بسیار همراه بود مهمانان همه از بلند پایگان بودن و ایوار ایریچ با, با پرنسس تروفنوها رقصید و این خانوم خواهر همان پرنسس معروفی بود که برنیاد خیریه یه رنج مرا با خود ببر را تأسیس کرده بود لذتی که ایوان ایلیچ از کار اداری می برد لذت غرور بود و لذت دادن مهمانی از ارضای صدای خودفروشی حال آنکه لذت حقیقی ایوان ایلیچ آن بود که از بازی نصیبش می‌شد اقرار میکرد که از هر چیز که بگذریم بعد از همه های ناگوار هستی لذتی که همچون چراغی همه تاریکی‌های زندگی‌اش را رو روشن می‌کند آن است که با دوستانی همدل و همبازیانی آرام در گروهی چهار نفری منشیند پنج نفر که شد برای کسی که از حلقه بیرون میرفت ناخوشایند بود گرچه وانمود کند که ناراحت نیست و دستش جور باشد و هوشمندانه و جدی ویست بازی کند و بعد شامکی بخورد و جامکی بنوشد در این صورت وقتی بعد از بازی ویست خاصه اگر مختصری برده باشد ایوار ایلیچ برد کلان را دوست نداشت به رخت خواب میرفت بادلی شاد وجدانی آسوده می‌خوابید. زندگی به این ترتیب پیش میرفت جمع آنها از بهترین اشخاص تشکیل می شود. سالمندانی متشخص و جوانانی برجسته با آنها رفت می‌کردند. ایوانیچ و همسر و دخترش هر سه نسبت به آشنایانشان کاملا هم نظر بودند. و حتی به آن که با هم توافق کرده یا قرار و مداری گذاشته باشند، دوستان و خیشابندان فقیر، و نادل پسندشان را که بی سر و پا می و با شوق و مهربانی به خانهشان می و در سالن آنها در آن محیط آراسته به بشخابهای ژاپنی چنین و چنانش وصله ناجور بودند از خود دور و خود را از قیدشان آزاد میکردند. کردن پای این گونه بی سر و پایان از خانه گالاوین بریده شد و جز نخبه های متشخصان و بلند پایگان در آن دیده نمی شدن. پسران جوان دور می میگشتند و از او دلبری می میکردند و پتریشچف بازپرس جوان پسر دمیتری ایوانوویچ پتریشچف و یگانه وارث ثروت او به قدری در به دست آوردن دل لیزانکا می میکوشید که مناسبات آن دو موضوع صحبت مکرر ایوان الیج با پراسكوویا فیودوروونا شده بود صحبت از این میکردند که آیا بهتر نیست که آنها را با سورتمه به گردش ببرند یا زیافتی همراه با نمایش ترتیب دهند زندگی آنها به این ترتیب پیش میرفت رفت و آن هیچ عوض نمیشد و همه چیز در این آبرومندی و برازندگی بود